سوره نازعات سبحان الله همه اینها بحث بحث قیامت است اما در هر سوره میبینی که مبحث قیامت همون مطالب ذکر شده اما با تعبیر دیگر با ادبیات دیگر که اصلا تکرار هم محسوس نمیشه خسته کننده هم نیست این هست اعجاز قرآن سوره مبارکه نبع در اون هم ذکر انعامات الهی بود که خدای تعالی چن نعمت و چن لطفی کرده از زمین گرفته تا آسمان تا همه الطاف پروردگار و اما ذکر مسائب دنیا توش نبود اما اون مسائب را شما مقایستن می که برای بعضی راحت است برای بعضی ناراحتی هست برای بعضی نعمت هست برای بعضی نقمت و مصیبت هست حال در آخرت الله تعالی علی سبیل ترقی احوال ربیان می فرماید که در آخرت احوال شما متفاوت است. همون طور که وقتی که در دنیا روح شما قبض بشه متفاوت این اینوان نازعات طاف المدبرات پنج آیه پنج نو فرشته فرشته اول و نازعات غرقن قسم به اون فرشتگانی که با سختی و با شدت نزع میکنند یعنی در روح انسان را روح را السکالبود جدا میکنند غرقن یعنی سخت کشنده با سختی میکشند غرقن مفعول نازعات هست مفعول مترقص هست من غیر لفظی یعنی با شدت میکشند با توپ و تشر به اسلام کشند با کتک و اردنگی میزنند زنند و روح را میگیرند. گیرند برای مجرمین همین هست شما نخواندید که اونها را میزنند زنند یدربون هم و ادبار هم را زنند. پشتشون را می زنند. فرشته ازاب و به انسان مجرم میگه گه انفسکم این روحش را تحویل بده نفست را بیا بیرون او مبارزه میکنه نمیذاره که بمیرد و او سعی میکنه روح نیت فرشته میزنه تا اینکه روحش را با شدت و با خشونت میگیرد لذا و نازعات این گروه فرشته هستند و نازعات کسانی که نازع میکنند یعنی میکشند غرقان با شدت کشاند یا با شدت بیرون کردنی و الناشطات نشتن قسم به اون فرشتگان که اونها به آرامی بیرون میکنند نشتن به آرامی بیرون کردنی نشت میگوین نشت دلورا که دلورا وقتی که تو چه آب بکنی آرام آرام راحت راحت چرخ را میچرخونی اون میاد بیرون لذا روح مومن را روح انسانی که انسان خوب بوده به همین راحتی فرشته چی کار می کند؟ تو یک دسمال حریری انتر که در حدیث آمده قرار میده ده به می بره با آسمانها. و السابقات سبقاً و قسم به اون فرشتگانی که در فضا و آسمان با سرعت سیر می کند با سرعت سیر کردنی. ف السابقات سبقاً قسم به اون فرشتگانی که از هم دیگه پیشی می گیرند، در مسابقه از هم دیگه جلو میزنند در چه مسابقه دارن در اینکه فرمان خدا را بهتر اجرا بکنن او سعی میکنه از او بهتر اجرا بکنه اون سعی میکنه از او بهتر وظیفه خودش را انجام بده فل مدبرات امر پس قسم به اون فرشتگانی که تدبیر میکنن امور دنیا را تدبیر کردنی امور دنیا را خداوند به فرشتگان سپرده که آنها به عنوان خادم ما برای ما انسان ها برنامه ریزی بکنند یک گروه معمول بادها هستند یک گروه معمول بارانها هستند یک گروه معمول مریزیها هستند یک گروه مامور نزول رحمتها هستند هر گروه کار خودشون را می کنند لذا الله می فرماید ان کسانی که امور را تدبیر میکنند همه این فرشتگان شاهدند که چی نه جواب این قسم مقدر است ای انسان ها شما همه از قبرها ها بلند میشید همه از قبرها ها حشر میشید بیرون آورده میشید کی خدایا این اتفاق کی میفته یوم ترجف الراجفه هم تخویف اخراوی است و اون کیش هست، اون زمانش هست. یوم ترجف الراجفه روزی که می لرزد لرزنده یعنی بلرزه در میا زمین اذا زلزله الارض زلزالها و اخرجت الارض و افقالها زمین وقتی که می لرزد و زلزله میکند هر چی که در شکم زمین است اون را بیرون مندازد. چی را بیرون مندازد؟ دفینه ها را، مرده ها را می لرزد هر جفر رااجفه میل زد لزنده تطببع هر راادف میل زد مورد بیرون میاد هر رادفة دنبال میکند اورا او را راادف اونی که پشت سرش هست ردیفش است. چیه نفخه دوم هست. نفخه دوم رو میشه. بعد از اون زلزله نفخه میشه انسانها بیرون میفتند. قلوب این یا واجفا شدت قیامت دل های در اون روز ترسناکند ترسان و لرزانند ابو ساروها خاشعا چشمه هایی هستند که به هستند چشمه هایی که از فرت خجالتی و از بس اونها جرم کردن چشما پایین هستند یقولون ا لمردودون فی الحافره اینجا خداوند همین گروه را میگو اینا کیا هستند همین حقی قیامت را قبول ندارن همین مجرمین همین مشرکین چی میگن؟ گوین؟ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي آیا مام به حافره بر میگردیم حافره چی میگن؟ اون حالت اول را میگن یعنی دوباره ما دوباره بر می زنده میشیم بعد از اینکه مردیم کی گفته؟ این اعتراض مجرمین مشرکین اَيْذَا كُنَّا عِزَامًا نَخ آیا زمانی که ما بیشیم تبدیل به بی استخانه های پوسیده نخیره پوسیده قالو تلکا ایدن کرره خاسره این در این هنگام بازگشتی زیان آور خواهد بود خاسره اینچی زیان بار به مسخره میگفتند میگفتن مشرکی میگفتند ما دوباره زنده میشیم پس واقع دوباره زنده بشیم خیلی ضرار کردیم چرا؟ البته دو تا تفسیر داره یکی به مسخره میگفتن خیلی ضرر کردیم به دلیل اینکه ما که بمیریم مالمون تقسیم میشه گوسفندانمون رو تقسیم میکنن زمینمون رو تقسیم میکنن باغمون رو میبرند زنم امیره جای ازدواج میکنه ما که برگردیم هیچ چی نداریم نه باغ داریم نه زن داریم نه زر داریم نه زمین داریم هیچی نداریم پس خیلی zarar میکنن اینا به مسخره میگفتن بعضی میگن نه به مسخره نبود اونها میگفتن مگر واقع قیامتی هست اگر واقع قیامتی باشد پس ما خیلی ضرر کردیم چون ما هیچ فکر قیامت نیستیم و نبودیم هیچ آمادگی هم برایش نکردیم بعضی میگن که این واقعی هست یعنی این صحت فنحنو ازا خاسرون لتکذیبنا ای... لها ما واقعا در خساره واقع شدیم چون رو تکذیب کردیم لذا الله میفرمای اینها به این صورت مسخره میکنند میگه میکن اعزاکون عظاما نخره وقتی که ما تبدیل به استخوان پوسیده بشیم دوباره زنده بشیم قالو تلک اذا کرره خاسره این بازگشت زیان باری خواهد بود الله میفرمای بله خواهد بود فانما هی زجرتون واحده اون قیامت یک فریاد است زجرتن واحده یعنی سیحتن واحده یک فریاد است یک جیغ هست که اون جیغ استرافیل است فریاد استرافیل است فَإِذَاهُمْ فا بِالصَّاهِرَةِ همی انسان ها در اون هنگام بِالصَّاهِرَةِ بر سطح زمین ساهره میگن ظاهر سطح زمین یعنی از شکم زمین از ته زمین از جوف زمین میان روی زمین قرار میگیرن و خداوند می شما انکار میکنید شما مسخره میکنید ببینید او مردکی را که مسخره کرد، کی بود فرعون؟ ببینید که او که مسخره کرد، او که انکار کرد، نتیجه چی شد؟ هل اتاک حدیث موسی، آیا پیش شما آمد سخن موسی، اذ ناده ربه بالوادي المقدس طوا زمانی کے اورا ربش ندا کرد صدا در دروادی مقدس یعنی وادی طوا موسی چی گفت پروردگار؟ اذهب الی فرعون انه طغى ای موسی برو پیش فرعون فرعون تغیان کری می میکنه سرکشی میکنه همان گونی که فرعون این امت ابو جهل و امثال ابو جال سرکشی می کرده او هم سرکشی میکرد. فقل هل لك إلى ان تزکا بفرعون بگو آیا ممکن است برای تو که پاک بشی میخوای پاک بشی از آلودگی شرک از آلودگی گناه و نجاسات و ال ربك فتخشى فتخشا و آیا این امکان است که من تورا راهنمایی کنم فتخشى از خدا بترسی؟ فرعون وقتی که موسیٰ صلی اللہ گفت موجزه هم بیش نشان داد فَأَرَاهُ الْآَيَةَ به اون نشان داد چی؟ آیه بزرگ نشانی و موجزه بزرگ اما فرعون چی کار کرد؟ بجای انابت بجای رجوع بجای پذیرش فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ تکذیب کرد، نافرمانی کرد ثم ادبر یسعا سپس پشت داد یسعا یعنی تلاش کرد به پشت دادن که اصلاً بسوی ایمان و بسوی خدا نیاد فحشر فنادا مردم را جمع کرد یسعا یعنی فعالیت کرد بر علیه پیغمبر و مردم را جمع کرد چی گفت؟ فحشر فنادا جم کرد مردم را با صدای بلند اعلام کرد فقال انا ربکم الاعلا من هستم رب اعلا و برتری شما اون که موسیٰ میگه قبول نکنید منم الله میفرماید فأخذه الله نکال الاخره والاولا الله او را معاخذ کرد او را گرفتار کرد بنکال نکال الاخره یعنی به نکال آخرت به عذاب آخرت اوله. یعنی چه؟ یعنی هم به عذاب دنیاوی گرفتارش کرد هم به عذاب اخروی در دنیا هم غرق شد و بدبخ شد و در آخرت هم هم چینیم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَ می فرماید داستان فرعون و جریان فرعون عبرتی هست درسی هست برای کسی که بترسد از خدا مستفیدین من ال آیات اما کسانی که نمی ترسند مثل ابو جل او که درس نمی گیرد ابو لحب درس نمی گیرد بقیه سرداران کفر و شرک درس نمی گیرند اما بقیه باید درس بگیرند که این بزرگترین قدرتمند اون زمان اون چطور معاخزه شد خدا چطور زلیلش کرد خدا قادر هست انتم اشد و خلقن. این نتیجه کسی که منکر باشد منکر قیامت یا منکر توحید حال ببینید دلائل عقلی توحید را الله تعالی از این جا ذکر می‌فرماید قبلا خدمت شما عرض کردم که سه نوع دلیل برای اثبات قیامت در قرآن وجود دارد یکی همین مسئله که الان شما خواندید که خداوند از سبزیجات و از زنده شدن زمین استدلال میگیرد یکی اینکه از خود انسان خود انسان مراحل خلقت و پیدایش خودش را نگاه کند و سوم از مخلوقات بزرگ ببینید کسی که مخلوق بزرگی درست می کند پروردگاری که آسمانی را درست می کند اون پروردگار قادر است که انسان کوچولو را هم دوباره درست کند کاری نداره برای خدا لذا الله می فرماید انتم اشد و خلقا ام آیا شما سختر هستید از نظر پیدایش یا آسمان،, آسمان برای خدا که یکی هست یک انسان یک متری را خدا درست کند یا آسمان میلیارد ملیاردها مساحتش هست خدا درست کند برای خدا یک کن هست اما به نظر خود شما بالاخره یک کسی که یک آلونکی درست میکند تا یک معماری که یک ساختمان صد طبقه درست میکنه خیلی فرق داره اون معماری که این ساختمان صد طبقه را درست میکند به طریق اولا این آلونک را چی میکند؟ میتونه درست کند لذا اللہ میفرماید اَنْتُمْ اَجَدُّ خَلْقًا اَمِسْسَمَاءً آیا شما سختر هستید از نظر پیدایش یا آسمان ببین آسمان را چطور الله درست کرد بناها بنا کرد آن را رفع و رفع سمکها و سقف او را بلندی او را خیلی بلند کرد اینقدر بلند کرد که انسان ها هر کاری میکنن نمیرسند میدونی بسیاری از دانشمندان از بس که با این می میروند و تو سیارات حتی میگردند نمیرسند به آسمانها الان میگن نه آسمان وجود نداریم فقط فضایی هست اینطور فضا را و جف را به این رنگ ما میبینیم آسمانی وجود ندارد همینی که شما به این رنگ میبینید همین آسمان است شما متوجه نیستید همین سقف هست قبلا خدمت شما ارز کردم این سقف است همونطور که این سقف مسجد چطور حفاظ است برای ما اگر کسی سنگ بندازد سقف نمیذاره به سر ما بخورد همچنین گاهی میبینیم که سنگ های بسیار خطرناک از اونجا رها میشن دانشمندان وقتی که اینها را رسحت میکنن دنبال میکنه اگر این میگه به زمین بخورد زمین دیگه هیچ موجود زنده تو زمین نمیماند. اما آسمان را الله تعال فزار طوری قرار داده که وقتی که در اون فضا و در اونجب قرار میگیره این را پودر میکنه تک کج میکنه. اینجا وقتی که به زمین میفته به اندازه نخود اگر به اندازه نخود، اگر اندازه نخود بیفته بیشتر دیگه. عرض کنم خدمت شما نمیوفتم یکی از عزیزان اینجا تفسیر بود تخصصش همین بودیشون ایشون میگفت میگفت که این ناسا مجموعه ناسا هر کسی که اون سنگها ها رو پیدا بکند هر سنگی را به چندین میلیون دلار میگیره بسیاری از مردم تو این کویرها تو این ریغا و بیابان ها از اون شهاب سنگ ها از اون سنگ ها یک تکهی را اگر ببینند میروند یک شبه اونا در میشند. چون از روی اونها خودشون به اونجا دسترسی ندارن آزمایش میکنن تحقیقات میکنن ارزش جو جواهری ندارد. ارزش از کنم اینکه بگیم یک جوهر ارزشمند و گوهر ارزشمندی از این جهت نه، ارزش تحقیقات دارد. از روی اون سنگ این شرکت ناسا یا مجموعه ناسا تحقیق میکنند که آیا اونجایی ای که این سنگ از اونجا آمده، اونجا آیا آب هست، اونجا اکسیژن هست، اونجا چه خواصی دارد، اونجا چه خبر است؟ از این طریق تحقیق میکنند. لذا این سنگی ای که به اندازه نخود گیره امده، به چه دلارهای بالا بالا یاسوما میخرند. پس ببین این سنگ اگر اونطور که همین دانشمندان میگه اگر میامد به زمین میخورد، خورد همین ای که اعتقاد به خدا ندارند ما تحقیقات این ها رو میخونیم. میگه اگه به بز زمین میخورد بلاخره زمین از بین میرفت و میلیاردها انسان تلف میشدن میمردند خب چی چیزی اینها را حفاظت کرد همین آسمان بلند هست همینی که خدای تعالی خواستی در آفریده که این سنگ را چی میکند پوتر میکند تک تکش میکند تحلیلش میکند الله میفرماید رفع سمکا فسواها سقفش را بلند کرد پس برابر اشقرار داد و اغتش ليلها و اخرج ضحاها و شبه کرد و اخرج ضحاها و همچنین روزش را بیرون کرد ضحا یعنی بعد از بنای آسمان خداوند روشنش کرد بوسیل خرشید و الارض بعد ذلك دحاها زمین را بعد از این, این بحث را تفصیل کردم ترتیب خلقت زمین و آسمان زمین را بعد از این خداوند دحو کرد دحو زمین یعنی صلاحیتها را در زمین گذاشت مثلا در زمین نیاز به معادن و خزائن و آب و کوه و هرچی هست اینها را گذاشت اخرج منها ماءها و مرعاها این هم از اون دحو زمین است از اون زمین خارج کرد آبش را و چرگا و والجبال ارساها و قائم کرد روی اون زمین متاعا لکم ولی انعامکم این کالا هستند برای بهرگیری شما و چار پایان شما، این زمین شما میرید از آبش استفاده میکنید برای حیوانات استفاده میکنید از مرتش برای حیوانات استفاده میکنید همه اینها را الله تعالی چطور پیدا کرد چطور خلق کرد خب این خالق قدرتمند نتواند یک انسانی را دوباره زنده بکند چرا شما انسان ها پرتید الله میفرماید فَإِذَا جَاءَتِ طَامَتُ الْكُبْرَا لذا این آسمان را پیدا کرد زمین آ آ آ انسان را دوباره پیدا می‌کند که تخوی فقرهیش شروع میشه زمانی که می آید مصیبت بزرگ الطامه الكبرى یعنی چی؟ الداهیت العظمى اون مصیبت بزرگ مصیبت بزرگ چیه؟ و هی نفخه ثانیہ نفخه ثانیه است اون روز که اون نفخ ثانیه دمیده میشه و تمام انسانها، حشر میشن بلند میشن از قبر الله می فرماید و ما يتذكر الانسان ما سعى در اون روز انسان بیاد میارت آنچه که سعی کردے آنچه که تلاش کرده هر عملی در دنیا انجام داده همه اعمالش بیادش میاد به میاد و بر و برزت الجحیم لمیرا جهنم ظاهر میشه جهنم جلو آورد می شه، لمن یارا برای هر کسی کی می بینند، همه جهنم را می بینند، فا اما منطقه، الان تقسیم، انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند، ناجین و هالکین. فا اما منطقه، ان اما انسانی که گری کرده، سرکشی کرده، و آثر الحیات الدنیا، و ترجیح داد زندگی دنیا را فَإِنَّ هی المأوا الْمَأْوَى همانا جهنم جائگاهی اون, اون انسانی که هم از نظر عقیده مشکل داشته تغیان داشته و هم از نظر عمل مشکل داشته برای او دنیا و ما فیها ارزشمند بوده آخرت برای ارزش نداشته چون بے آخرت اعتقاد نداشته این انسان جایگاهش جهنم مقواه او جای رجوع او یا جای پناه او جهنم است و اما من خاف مقام ربه این بشارت است اما اون انسانی که میترسد از ایستادن در محظر رب مخاف مق خاف مقام ربه مقام ظرف هست ظرف مکان هست یعنی در محظر رب می ایستد از او میترسد لذا وقتی که می ترصد تنها چیزی که در وجود ما تقوا میاره و باعث میشه که ما بتونیم نفس خودمون را کنترل بکنیم فکر و ذکر آخرت است چطور نفست را کنترل بکن فکر بکن باید به الله متعال پاسخگو باشی لذا مقام و اما من خاف مقام ربه اما اون انسانی که می ترسد از قیام از ایستادن از پاسخگویی جلوی ربش و نهن نفس عنی الهوا، نفس خودش را از خواهشات و از اون لذاتی که گناه هستند باز میدارد فا الجنت هی المعوی همانا بهشت اون بهشت هست معوی او جای پناه او به بهشت رجوع میکنند خب وقتی که این آیات گفته میشد مشرکین میپرسیدن کی میشه این اتفاق کی میفته الله تعالی به پیغمبر میگه پیغمبر شما در جایگاهی نیستید که زمان قیامت را بدانید قیامت و علم قیامت یکی از خواص رب العالمین است فقط خدا میدوند پیغمبران نمیدونند فرشته ها هم نمیدونند یسالونک عن الساعه سوال میکنند شما را از قیامت ایان مرساها کی هست قیام آن ای ایانه اقامتها قیام قیامت کی هست فی ما انت من ذکراها فی ما انت یعنی در چه جائگایی هستی شما از ذکر آن یعنی از تعین آن, آن یعنی شما ای پیان بری من شما که نمیتونو رتعین کنید الی ربک منتحاها یعنی منتهى علم او انتهاء علم او پیش رب تو هست فقط رب میداند که او کی میشه انما انت من یخشا اما تو ای پیامبر جز نیست که تو بیم دهنده هستی کسی که از اون قیامت بترسد کانهم یوم یرونها گوی انسان ها روزی که قیامت را میبینند چنان وحشت زده که لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاها در دنیا نموندن مگر یک صبح یک شام یک بستلا بیگاه بعد از ظهر او ضحاها یا صبح همون بعد از ظهر یعنی به انداز نیم روز وحشت قیامت الله تعالی نجات بده وحشت قیامت اینقدر زیاده انسان کلا حافظش پاک میشه نمیدونی من 80 سال عمر داشتم تو دنیا 70 سال 40 سال همه را فراموش میکنه وقتی که اهل انسان ها بلند میشند سال میشه از اونها کم لبثتم فی الارد عدد سنین در زمین چند سال ماندید؟ قالو لبثنا یوما او بعد یوم دقیقیاتی نیست یا یک روز بود یا نصف روز بود اصلا هفتات هشتات سال همه را پاک کردی همه را فراموش کردی این اصفرد چیه؟ وحشت است